رابطه در سطح ظاهر و باطن وقتی کسی کاملا آگاه و هوشیار است آیا باز به رابطه با دیگری نیازمند است؟ برای مثال اگر مرد باشد باز به سوی یک زن کشیده خواهد شد اگر زن باشد آیا بدون یک مرد باز احساس ناکامل بودن خواهد کرد؟ چه روشن شده باشی یا نه چه مرد باشی چه زن در سطح هویت سوری خود کامل نیستی تو نیمه ای از یک کل هستی این نیمه بودن صرف نظر از آنکه تا چه حد آگاه هستی به شکل جاذبه جنس مخالف تجلی پیدا میکند کشش به سمت انرژی قطب متضاد اما در جرفای خود و در سطح اتصال خود به هستی این جاذبه چیزی نخواهد بود مگر چیزی که در سطح و هاشیه زندگی تو اتفاق میافتد. در آن جرفا همه اتفاقات و تمامی صورتهای پدیده ها و انواجی بر سطح اقیانوس به نظر خواهند رسید تو همان دریایی و در عین حال هواب هم هستی اما هوابی که حقیقت خیش را شناخته است و میداند که دریاست برای دریا حباب ها انقدر ها مهم نیستند منظورم آن نیست که با این شناخت دیگر با کسی رابطه برقرار نمیکنی. در واقع وقتی میتوانی توانی رابطه درست و ریشهدار با کسی برقرار کنی که هستی را شناخته باشی وقتی به چونین شناختی دست میابی آنگاه توجه تو به فراسوی صورت یار معطوف می شود در ژرفای هستی زن و مرد یکی و یگانند ممکن است صورت و شکل تو هنوز به چیزهای نیازمند باشد اما هستی تو به چیزی نیازمند نیست هستی تو کامل و تمام است اگر نیازهای صورت و شکل فیزیکی تو برآورده شوند بسیار خوب است اما اگر چنین نشد صورت باطنی تو آسیبی نخواهد دید بنابراین اگر کسی که روشن شده است جفتی نیابد ممکن است در سطح صورت و ظاهر احساس کمال نکند اما در سطح معنا و باطن احساس کمال کامیابی و آرامش می کند. آیا مثل دیگران نبودن رحمت است یا زحمت بدیهی است که اکثریت افراد جامعه تو بر اساس الگوهای کهنه ذهنیشان زندگی می کنند. آنها بر اساس این الگوها فکر می کنند و واکنش نشان میدهند. معلوم است که آگاهی تو فراتر از ناآگاهی آنها قرار خواهد گرفت و تو تا حدودی در میان آنها بیگانه تلقی خواهی شد. این که از طرف آنها پذیرفته نشوی برای تو زحمت ایجاد میکند اما این زحمت عین رحمت خواهد شد اگر محتاج کام و ناز دیگران باشی تا به ساحت آگاهی و روشنی را نخواهی داشت زحمت دیگران آگاهی تو را شدیدتر خواهد کرد در سطح آگاهی و حضور بلا سبب خیر است اما سعی نکن از بلاکشی خود هویتی تازه برای خود بیافرینی در غیر این صورت باز به دامن نفس افتادی همان هویت قربانی و مظلوم نفس با این هویت تازه باز تو را به دامن ناآگاهی می اندازد آیا چنین نیست که برای داشتن رابطه‌ای درست و حقیقی و سازنده با دیگران ابتدا باید رابطه‌ای درست و حقیقی با خود برقرار کنیم و خود را دوست بداریم؟ اگر نتوانی در تنهایی با خود راحت باشی به دنبال رابطه خواهی گشت تا با آن ناراحتی خود را بپوشانی اما این ناراحتی خود را به شکلهای دیگر در رابطه تو نشان خواهد داد در این صورت تو طرف رابطه خود را مقصر تلقی خواهی کرد آنچه واقعاً با داری، این است که لحظه حال را کاملا بپذیری. آنگاه در اینجا و لحظه حال احساس راحتی خواهی کرد و با خود نیز معنوس خواهی بود. اما آیا لازم است که با خود نیز رابطه داشته باشی؟ چرا نمی توانی فقط خودت باشی؟ وقتی با خودت رابطه ای داری، یعنی خود را به دو قسمت تقسیم کرده ای. من و خودم سوژه و ابژه، فائل شناسایی و موضوع شناخت این دوگان پنداری ساخته و پرداخته زه ریشه همه پیچیدگی ها و گرفتاری‌های های غیر ضروری در زندگی توست در ساحت روشن شدگی تو خودت هستی تو و خود یگانه تو خودت را مورد قضاوت قرار نمی دهی. تو برای خودت احساس تعسف نمی کنی. تو از خودت مقرور نیستی تو عاشق خودت نیستی تو از خودت بیزار نیستی و غیره این شکاف بین تو و خودت با خودنگری پر می شود دیگر خودی وجود ندارد که نیازمند حمایت دفاع و پرستاری تو باشد وقتی تو به ساحت روشن شدگی وارد می شوی از یک رابطه خبری نیست رابطه تو با خودت وقتی این رابطه را قطع می کنی همه ی رابطه های دیگر تو عاشقانه خواهند شد دلاسودگی فراسوی قم و شادی فراسوی خوب و بد آیا بین شادی و دلاسودگی تفاوتی هست؟ آری. شادی وابسته به شرایطی است که ما آن را مثبت تلقی کنیم دلاسودگی وابسته به چیزی نیست. آیا ممکن نیست که فقط شرایط مثبت را جذب زندگی خود کنیم؟ اگر دیدگاه و فکر ما همیشه مثبت باشد، آنگاه فقط حوادث و شرایط مثبت را بروز خواهیم داد. اینطور نیست؟ آیا واقعا و دقیقاً میدانی چه چیزی مثبت و چه چیزی منفی است؟ آیا تصور تو از این دو کلی نیست؟ آدمهایی بودند که محدودیت‌ها، شکستها، ضررها و یا درد و رنجها برایشان حکم معلمی بزرگ را داشته است. این چالشها و دشواری‌ها به آنان آموخته است که تصویر ذهنی و دروغین از خود را کنار بگذارند و از حوصها و آرزوهای نفسانی دست بکشند رنجها و دشواریها این گونه آدمها را واقعی تر کرده است آنچه در زندگی تو رخ می دهد و منفی تلقیش می کنی بی درسی عمیق در خود دارد ممکن است در همان هنگام متوجه این درس نهفته نشوی اما حتی یک بیماری جزئی و یا یک حادثه کوچک نیز میتواند تواند به تو نشان بدهد که در تو چه چیزی واقعی و چه چیزی غیر واقعی است چه چیزی اساسا مهم است و چه چیزی بی اهمیت به تعبیری الخیرو فی ما وقع در هر آنچه اتفاق می افتد خیری نهفته است و خیر حوادث ها و چالشها آن است که ما را به ما نشان میدهند. اگر از نظرگاهی بالاتر نگاه کنیم شرایط همواره مثبتند دقیقتر بگویم شرایط نه مثبتند و نه منفی آنها همان چیزی هستند که هستند و وقتی تو در حالت پذیرش کامل آنچه هست قرار داری که تنها شیوه ی زندگی درست است در واقع به فراسوی خوب و بد رفتهای حالا دیگر برای تو فقط خیر برین وجود دارد و بس خیری که حتی منفی و بدها را نیز دربر میگیرد اگر از دیدگاه ذهن نگاه کنی فقط خوب بد خوشایند ناخوشایند عشق نفرت میبینی به همین دلیل در کتاب مقدس میخوانیم آدم و هوا از بهشت رانده شدند زیرا از درخت دانش خوب و بد خورده بودند به نظر من این فریب دادن خود است وقتی حادثه ناگوار برای من یا یکی از نزدیکان من اتفاق میافتد تصادف بیماری نوعی درد و یا مرگ میتوانم تظاهر کنم که در این حادثه خیری بوده است اما واقعیت این است که آن حادثه بد بود است پس چرا این حقیقت را منکر شوم لازم نیست به چیزی تظاهر کنی تو فقط به آن حادثه مجالی برای بودن میدهی همین و باث این مجال دادن تو را به فراسوی ذهن خویش و الگوهای مقاومت آن میبرد الگوهایی که قطبهای مثبت و منفی را میآفرینند این مجال دادن انصر اساسی بخشش است بخشیدن زمان حال بسیار ضروری تر از بخشیدن زمان گذشته است اگر هر لحظه را ببخشی یعنی به آن مجال بودن بدهی دیگر رنجش ها را در روح خود تلمبار نمی کنیم توجه کن بحث ما درباره شاد بودن نیست برای مثال وقتی یکی از عزیزان تو تازه مرده است و یا احساس می کنی که به لحظه مرگ خود نزدیک شده ای نمی توانی شاد باشی بدیهی اما می توانی در آرامش باشی ممکن است اشک بریزی و اندوهگین باشی اما زیر اشک و اندوه تو صفایی و آرامشی و حضوری قدسی نهفته است این حالت همان تجلی ذات غیر متجلی هستی در توست همان دلاسودگی است همان خوبی است که زدی ندارد اما اگر وضعیتی پیش آمده باشد که از دست من کاری برای تغییر آن براید چه؟ چگونه می توانم به آن وضعیت مجالب بودن بدهم؟ چگونه می توانم آن را بپذیرم و در عین حال تغییرش بدهم؟ تو کاری را بکن که احساس می کنی باید بکنی کار خود را بکن و در عین حال پذیرای آن چیزی باش که هست از آنجا که ذهن و مقاومت هم معنا هستند بنابراین پذیرش بیدرنگ تو را از سلطه ذهن می رهاند و بدین سان اتصال تو را با هستی برقرار می سازد در نتیجه میل نفس به اینکه کاری انجام دهد ترس، حرص، کنترل، دفاع یا تغذیه‌ی احساسی دروغین از خود فروکش می کند در این حالت آگاهی جرفتر و گسترده تر از ذهن پدیدار می شود و به اعمال تو کیفیتی استثنایی می بخشد. دو هزار سال پیش ماکوز آوریلیوس انسانی قدرتمند و با بصیرت نوشته است. پذیرای آنچه باش که واقع می شود. آنچه واقع می شود تار و است که گلیم سرنوشته تو را می بافد. بسیاری از آدمها گویی ناچارند در و رنج بسیاری را بیهوده تحمل کنند تا سرانجام انجام به این نتیجه برسند که باید رضا به داده بدهند و گره از جبین بک شایند. رضا به داده دادن یعنی بخشیدن لحظه ها یعنی طلمبار نکردن رنجش ها و بیزاری ها و کدورت ها یعنی اینکه من کار خود را می کنم و در عین حال میدانم در آن چه اتفاق افتاده است خیری نهفته است با پذیرش تو معجزهای رخ می‌دهد بیداری هستی یعنی آگاهی از خلال آن چه شر و ناخوشایند به نظر می‌رسد استحاله رنج به دلاسودگی هدف از همه دردها و رنجها و ابتلاعات در دنیا آن است که آدمها حقیقت خود را که آن سوی پرده نام و صورت است بشناسند بنابراین، آنچه را ما با فهم محدود خود به عنوان شر تلقی می‌کنیم چیزی نیست مگر پاری از یک خیر برین که زدی ندارد البته جز از طریق بخشیدن نمی‌توان این نکته را فهمید اگر این بخشش اتفاق نیفتد شر استحال نمی‌یابد و همچنان شر باقی میماند از طریق بخشیدن که به معنای فهم خیالی بودن گذشته و نیز مجال دادن به لحظه ی حال است که آنچنان که هست باشد معجزه استحاله رخ میدهد. نه تنها در درون تو بلکه در بیرون تو نیز فضای ساکت و آرام حضوری ژرف هم در درون تو و هم در بیرون تو پدید میآید آنگاه هر چیز و هر کس که وارد این فضا می شود تأثیری عمیق میپذیرد، گاهی آشکار و فوری و گاهی در سطح عمیق که به چشم نمی آید ولی در آینده ظاهر می شود به سان ناسازگاری را کنار میگذاری دردها را شفا می دهی ناآگاهی را می زدائی بیان که کاری بکنی تنها با فرکانس پر قوت حضور خیشی